جنه خودخوا نوشتاری ریچارد داکینز، پنوشت فصل نهم جنگ بین دو جنس. توضیح این جمله در صفحه 140، تضاد بین گفته که هیچ نسبتی هی با یکدیگر ندارند، تا چه حد باید شدیدتر باشد. توضیح مثل خیلی موارد دیگر در مفهوم این جمله اول در حالی که شرایط دیگر یکسان باشد نهفته است. معلوم است که همکاری یک جفت با هم برایشان منافعی دارد. در این فصل چند بار به این موضوع برخورده ایم. زیرا هر جفت احتمالاً درگیر یک بازی غیر مجموع سفرند. بازی که اگر دو طرف همکاری کنند برد هر دو بیشتر می شود و اینطور نیست که برد یک طرف برابر با باخت آن دیگری باشد. این موضوع را در فصل دوازده شرط دادم. این یکی از آن جاهایی در کتاب است که لحن من ناگهان به سوی نگرشی منفی و خودخواه از حیات خیز برمیدارد. شاید برای آن زمان لازم بود. زیرا دیدگاه حاکم در مورد رابطه یک جفت نر و ماده در جهتی دیگر زیاد قرراقامیز بود. تقریبا همه فرض را بر برین میگذاشتند که یک جفت همکاری بیدریقی با یکدیگر دارند. اصلا امکان سو استفاده مطرح نبود. در چنین اوضایی بدبینی آشکار من که در جمله اول دیده می شود قابل درک است. اما حالا برخورد ملایمتری به این قضیه دارم. حالا احساس می صحبت‌هایم صحبت درباره نقش جنسی انسان در پایان این فصل هم واجبندگی که دارد. دو کتابی که در مورد تفاوت تکامل جنسی در بشر کلی تر توضیح دادند عبارتند از جنس تکامل و رفتار از مارتین دالی و مارگو ویلسون و تکامل جنسیت در انسان از دانل سیمونز توضیح عبارت صفحه 142 تعداد بچههایی که یک نر عملن می داشته باشند نامحدود است و از اینجا داستان بهرهگیری از ماده شروع می شود. توضیح حالا فکر میکنم تاکید بر نابرابری اندازه تخمک و اسپرم به عنوان ببنای نقش های این دو جنس گمراه کننده است. گرچه یک اسپرم کوچک و ناقابل است اما ساختن میلیونها ها اسپرم و در رقابتی سنگین آنها را با موفقیت به داخل یک ماده راندن کار کوچکی نیست. اکنون برای توضیح عدم تقارن بنیادی بین نر و ماده رویکرد زیر را ترجیح می دهم. فرض کنید از اول دو جنس داریم که هیچ یک از ویژگی خاص نر یا ماده را ندارند. با اسمای خونسای ای و B از آنها نام می‌بریم. تنها چیزی که باید مشخص باشد این است که هر آمیزشی باید با یک A و یک B صورت گیرد. آن وقت در حیوان چه A باشد، چه B با یک بدبستان روبروست. وقت و تلاشی را که باید صرف جنگ با رقیبان کرد نمیتوان برای نگهداری از بچه ها گذاشت و برعکس از وقت و تلاش لازم برای بچه ها نمیتواند زد و با رقبا جنگید. از هر حیوانی انتظار می رود. تلاش خود را به صرفه بین این دو مدعی رقیب به تعادل نگه دارد. می خواهم به این نکته برسم که تعادلی که ایها به آن می رسند ممکن است با آن تعادلی که بیها به آن می رسند داشته باشد و اینکه بعد از رسیدن به آن تعادل هم احتمالا بینشان نابرابری فضاینده وجود خواهد داشت. برای اینکه بهتر متوجه شویم فرض می کنیم. این دو جنس A و B از اول در اینکه بیشتر سرمایه خود را روی بچه ها یا در جنگ. منظورم هر نور رقابت با هم جنسان است. صرف کنند با هم متفاوتند. ممکن است در ابتدا این تفاوت ناچیز باشد. چون نکته این است که یک گرایش ذاتی در رشد تفاوت ها وجود دارد. مثلا A ها با جنگ شروع می کنن. و این کار در موفقیتشان در تولید مثل بیشتر از رفتار پدر مادرانه تأثیر دارد اما بی ها با رفتار پدر مادرانه شروع می کنند و به تنوع در موفقیت تولید مثل خود کمی بیشتر از جنگ اهمیت می دهند. این یعنی درست است که ای هم از رفتار پدر مادرانه سود میبرد. ولی در A تفاوت بین یک مراقبت موفق با یک مراقبت ناموفق کمتر است از تفاوت بین یک جنگنده موفق با یک جنگنده ناموفق در میان B درست عکس این صادق است بنابراین در مورد یک مقدار معین از تلاش A می تواند آن را صرف جنگ کرده و عملکرد خوبی داشته باشد در حالی که B با دوری از جنگ و صرف همت و تلاش خود در راه مراقبت پدر مادرانه عمل بهتری خواهد داشت. در نهست بعد، ایها کمی بیشتر از والدین خود می جنگن. بیها کمی کمتر از والدین خود میجنگند و کمی بیشتر مراقبت می کنن. حالا تفاوت بین بهترین ای و بدترین ای از نظر جنگیدن بیشتر شده است، و تفاوت بین ای و بدترین ای از نظر مراقبت کردن باز هم کمتر شده است. بنابراین باز به نفع ای است که تلاش خود را بیشتر صرف جنگ کند و کمتر صرف مراقبت. با گذشت زمان درست عکس این وضع در مورد بیها پیش می آید. نکته مهم این است که آن تفاوت جزئی که در ابتدا بین دو جنس وجود دارد خود به خود بیشتر دیده می شود. انتخاب ابتدا تفاوت کوچک را شروع و به تدریج آن را بزرگ و بزرگتر می کنند تا جایی که ما حالا ایها را نر و بیها را ماده می نامیم. آن تفاوت اولیه به قدری ناچیز است که ممکن است اتفاقی باشد زیرا بعید از شرایط نخستین برای دو جنس کاملا یکسان بوده باشد. همانطور که خواهید دید، این تقریبا آنند نظریه جدایی اولیه ابتدایی به اسپرم و تخمک است که پارکر، بیکر و اسمیت مطرح کردند، و در صفیه 142 مورد بحث قرار گرفت. بحثی که اکنون ارائه شده کلیتر است. جدا شدن اسپرم و تخمک فقط یک جنبه از بحث کلیتر و اساسیتر جدا شدن نقش های جنسی است. در این استدلال جدایی تخمک و اسپرم و همه دیگر جنبه‌های آن جدایی نقش‌ها را یکسان در نظر می‌گیریم به جای اینکه جدایی تخمک و اسپرم را پایه قرار دهیم و ریشه تمام بیجگی های خاص نر و ماده را در آن بجویم فقط فرض می‌کنیم دو جنس داریم که باید با یکدیگر جفت شوند لازم نیست چیزی بیش از این درباره‌شان بدانیم با شروع از این فرض کمینه بیشک انتظار داریم هر قدر هم که دو جنس در ابتدا به هم شبیه باشند با کسب تخصص مکمل ولی متضاد هم در روش تولید مثل به تدریج از هم دور شوند جدایی اسپرم و تخمک نشانه ای از این دور شدن از هم است نه عامل ایجاد کننده ای آن توضیح در باری این عبارت در صفحه 150 بگذارید از روشی که مینارد سمید در مدل رقابت خشونت به کاربرد برد استفاده کنیم و آن را در مورد بررسی نر و ماده به کار ببریم. توضیح فکر یافتن یک راهبرد تکاملی پایدار مخلوط در یک جنس را که در تعادل با راهبرد تکاملی پایدار مخلوطی در جنس دیگر باشد اکنون خود مینارد سمید مستقل از او، ولی در همان جهت آلن گرافن و ریچارد سیبلی ادامه داده مقاله گرافن و سیبلی از نظر فنی پیش تر است. نوشته مینارد سادهتر ساده تر توضیح داده است. مختصر اینکه او ابتدا دو راه برد را در نظر می گیرد که هر کدام از دو جنس می در پیش گیرند. نگهبانی و ترک. ترک فرزند. همونطور که در مدلهای های خجالتی هرزه و با پرسش جالب این است که چه مخلوطی از راهبردهای بین نر در برابر چه مخلوطی از راهبردهای بین ماده ها پایدار است پاسخ این سؤال به فرض ما درباره شرایط اقتصادی خاص آن گونه بستگی دارد جالب این است که به تغییر دادن فرضهایمان در مورد اقتصاد آنها اینطور نیست که به طیف کاملی از انواع راهبردهایی از نظر کمی پایدار برسیم در این مدل فقط یکی از چهار راهبرد پایدار زیر پیدا خواهد شد. اسم این چهار راهبرد را روی اسمهای جانورانی که نمونه از آن هستند گذاشتند و عبارتند از اردک نر ترک می کند، ماده نگهبانی می کند. ماهی خاردار، ماده ترک می کند، نر نگهبانی می کند. مگس میوه، هر دو ترک می کنند و گیبون، هر دو نگهبانی می کنند. یک چیز جالبتر هم اینجا هست. اگر از فست پنج یادتن باشد، های ESS ممکن است در هر یک از دو راهبردی که به یک اندازه پایدارند استقرار یابند. در مدل مینارد سمیت هم همینطور است. جالب این است که هر دو راهبرد خاص این چنینی که در مقابل جفت‌های دیگر پیدا می‌شوند، هر دو با هم در شرایط اقتصادی یکسان پایدار هستند. برای مثال تحت یک رشته شرایط هم اردک و هم ماهی خاردار پای اینکه عملا کدامیک از این دو وجود داشته باشند بستگی دارد به تصادف یا دقیق تر بگوییم به حوادث تاریخی تکامل و شرایط اولیه تحت یک رشته شرایط دیگر گیبون و مگس میوه پایدار می شوند باز حوادث تاریخی است که تعیین می کند در هر گونه خاص کدام یکی از این دو رخ می دهد اما هیچ شرایطی نیست که تحت آن گیبون و اردک با هم پایدار باشند هیچ شرایطی نیست که در آن اردک و مگس میوه با هم پایدار باشند این تحلیل همپایداری واجه جدید میسازیم در مورد مخلوط های سازگار و ناسازگار ایسس پیامدهای های جالبی در بازسازی تاریخشی تکامل دارد برای مثال در این جهت هدایتمان میکند که در تاریخچه تکامل انتظار داشته باشیم بین نظامهای جفتگیری بعضی از انواع ها محتمل و بعضی نامحتمل باشند مینارسمیت در یک بررسی مختصر از الگوهای جفتگیری در قلمرو جانوران به کند و کاف در این شبکهٔ تاریخی می‌پردازد. و به این سوال به یادمندنی پاسخ می دهد که چرا پستانداران نر شیر نمیدهند. توضیح عبارت مندرج در صفحه 153 که می توان نشان داد نوسانی در کار نیست این نظام به سوی یک وضعیت پایدار میل می کند. توضیح؟ با عرض پوزش اعلام می کنم این جمله اشتباه است، اما اشتباه جالبیست است. زیرا اشتباهی است که در آنجا گذاشته ام و حالا کمی طول میکشد تا آن را برملا کنم. در واقع مانند همان اشتباهی است که گیل و ایوز در مقاله اصلی مینارد اسمیت و پرایس پیدا کردند. یادداشت‌های مربوط به صفحه 74 را ببینید. اشتباه مرا دو ریاضی زیست شناس که در استرالیا کار میکنند پی شوستر و ک زیگموند یافتند. من نسبت نرهای باوفا به بیقید و بندها و ماده های خجالتی به هرزه ها را درست به دست آورده بودم طوری که در آن هر دو نر به یک اندازه موفق و هر دو ماده نیز به یک اندازه موفق بودند این در واقع تعادل است اما دقت کرده بودم که آیا این تعادل پایدار هست یا نه بیشتر ممکن بود لبه یک چاقوی خطرناک باشد تا یک دره امن برای محاک زدن تعادل باید ببینیم اگر آن را کمی به هم بزنیم چه رخ دهد؟ اگر توبی را به لبه یک چاغو فشار دهید از بین می‌رود ولی اگر از وسط یک دره به بیرون فشار دهید دوباره به آنجا برمیگردد در آن مثال عددی من تعادل برای نرها 5 به هشت با وفا و سه به 8 حوسباز بود اما اگر اتفاقی نسبت حوسباز در آن جمعیت طوری زیاد شود که کمی بالاتر از حد تعادل قرار گیرد چه می شود برای اینکه تعادل پایدار و خودسامان باشد باید عملکرد آن هوسبازها فوراً کمی پایین بیاید متاسفانه چونن که شستر و زیگمون نشان دادند چنین نشد برعکس کاروبر هوسبازها بهتر شد و هم در جمعیت بالا رفت دستگاه به جای اینکه خودسامان شود خود افضا شد البته بسامت بیشتر شد ولی نه برای همیشه فقط تا یک حد معین اگر شما این را به صورت یک مدل متحرک در کامپیوتر شبیه سازی کنید من این کار را کردم به های تکراری بی پایانی می رسید از غذا این دقیقا همان چرخه است که من صورت فرضیش را در صفحه 125 شرط دادم ولی آن موقع فکر می کردم فقط مسئله اقاب و کبوتر وسیله برای شرح دادن است در قیاس با اقاب و کبوتر کاملا به اشتباه آن را فرضی پنداشتم و اینکه آن دستگاه واقعا به تعادل پایدار میرسد تیر آخر شستر و زیگموند دیگر جای حرف باقی نگذاشت بنابراین به طور خلاصه به این دو نتیجه میرسیم الف نبرد بین دو جنس از خیلی جهات مانند طعمه و شکار است B رفتار یک عاشق مثل ماه در آسمان فراز و نشیب دارد و مثل هوا غیر قابل پیش بینی است. البته مردم بدونه که با معادلات دیفرانسیل آشنا باشند این چیزها را میفهمند. توضیح در مورد عبارت مندرج در صفحه 155. در میان ماهی ها مواردی از الطاف پدرانه علت چیست؟ توضیح فرضیه دانشجویی به نام تامسین کارلیل درباره ماهی‌رو حالا مارک ریدلی زبن بررسی مفصلی از مراقبت‌های والدین در قلمرو حیوانات به صورت تطبیقی امتحان کرده است. مقالی ریدلی مثل خود فرضیه کارلیل یک کار فوق‌العاده خوب است. وقتی کارلیل دانشجوی دوره کارشناسی را برای من نوشت که متأسفانه توجه چندانی را جلب نکرد. توضیح درباره عبارت در صفحه 158 یک نوع فرآیند ناپایدار پیش روونده توضیح نظریه پیش د ده آفیشر در مورد انتخاب جنسی را خیلی کوتاه مطرح شده بود اکنون آرملند و همکارانش به صورت ریاضی بیان کردند موضوع مشکلی است. میتوان آن را به زبان غیر ریاضی شرط داد ولی دیگر مختصر نخواهد بود البته آنقدر هم نخواهد شد که تمام یک فصل را اشغال کند. من در ساعتساز نابینا تمام فصل هشت را با ان اختصاص دادم و در اینجا موضوع را تکرار نمی کنم. در عوض به مسئله می که هیچ وقت به اندازه لازم در کتاب هایم آن تاکید نکردم. چگونه تنوع لازم حفظ می شود؟ وقتی انتقاب داروینی صورت میگیرد که به اندازه کافی تنوع ژنی وجود داشته باشد مثلا اگر کسی بخواهد خرگوش های با گوش های دراز داشته باشد در ابتدا موفق می شود در یک جمعیت آزاد از خرگوش ها هر خرگوش معمولی گوش های متوسطی دارد با میارهای های خرگوشی یقینم با معیار ما درازند تعدادی خرگوش گوش هایشان از متوسط تعدادی گوش بلندتر از متوسط است. اگر زاداوری فقط بین درازگوشترین ها صورت گیرد می توان اندازه متوسط گوش را در نسل بعد بیشتر کرد. تا مدتی چنین است اما اگر زادو ولد آن گوش درازترین ها همچنان ادامه یابد زمانی خواهد رسید که دیگر تنوع لازم وجود ندارد. همه آنها درازترین گوش ها را خواهند داشت و تکامل به توقف میرسد. در تکامل معمولی چنین چیزی مشکل ساز نیست زیرا بیشتر مهیدها چنین فشار ثابت و یک نواختی را که در یک جهت باشد ادامه نمی دهند. بهترین طول به طور معمول برای هر حیوان این نیست که کمی بلندتر از گوش فعلی باشد. حالا گوش فعلی هرچه هست. بهترین طول برای گوش یک کمیت ثابت مثلا 80 است اما انتخاب جنسی واقعا این ویژگی آزاردهنده را دارد که هموار دنبال یک حد مطلوب تحریک کننده است. سلیقه ماده ها همیشه گوش درازتر را برای نر میطلبد بی توجه اینکه گوش فعلی چقدر است؟ بنابراین واقعا ممکن است تنوع کم شود و در این صورت انتخاب جنسی صورت نمیگیرد. ما متوجه می شویم در آن آرایه مردان بیهوده اقراق شده است. به نظر می رسد با تناقضی رو, رو هستیم که شاید بتوان آن را تناقض محو تنوع نامید. راه حل لند برای این تناقض جهش است. از نظر او همیشه برای سوخت رسانی به موتور انتخاب به اندازه کافی جهش وجود دارد. دلیل اینکه پیش از این افرادی در این مورد تردید داشتند این بود که فکر میکردند هر بار فقط یک ژن جهش می کند. میزان جهش در هر جایگاه ژنی تر از آن است که تناقض محو تنوع را حل کند لوند یادآور شود که دوم و دیگر اعضایی که انتخاب جنسی روی آنها کار می‌کند تحت تاثیر ژن‌های متفاوت بسیار زیادی پلی هستند و اثر کوچک تک تک آنها به هم افزوده می شود به علاوه ضمن پیشروی تکامل مجموعه پلیژنی مربوطه تغییر می کند جنهای جدیدی به عنوان نیروهای تازه جلب می شوند و تنوع در طول دوم را تحت تأثیر قرار می دهند و ژنهای قدیم کنار می روند جهش ممکن است بر هر یک از این مجموعه های متغیر ژنی اثر بگذارد و به این ترتیب خود تناقض محو تنوع را محف کند. و د همیلتون پاسخ دیگری برای این تناقض دارد. پاسخ او به این مسئله مانند دیگر پاسخ او به بیشتر مسائل در این روز است. انگل برگردیم به گوش خرگوش بهترین طول گوش شاید به عوامل صوتی مختلفی بستگی داشته باشد. دلیلی ندارد فکر کنیم این عوامل به شکل یک نواخت، در جهتی ثابت همراه با گذشت نسلها تغییر می کنند. بهترین طول گوش برای خرگوش ممکن است یک چیز کاملا ثابتی نباشد با این حال چنین نیست که انتخاب در یک جهت خاص آنقدر پیش برود که در بیرون از محدوده تنوعاتی که در خزانه ژنی فعلی وجود دارد قرار گیرد بنابراین اصل تناقض محو تنوعی وجود ندارد اما حالا نگاهی بیاندازید به آن محیط بسیار متغیری که ها فراهم می‌کنند در یک جهان پر از انگل بنفد توانایی مقابله با آنها انتخاب پرقدرتی وجود دارد انتخاب طبیعی خرگوش‌های را ترجیح می‌دهد که کمتر از بقیه در معرض انگل‌های اتفاقی آن دوروبر باشند نکته مهم این است که این ها انگلها همیشه انگل‌های خاصی نیستند بلا میآید و می‌رود امروز که از بیماری ویروسی خرگوش ها وجود داشته باشد، سال دیگر تا اون خرگوشی، سال بعد از آن ایدز خرگوشی و مانند اینها. یا شاید خود ویروس بیماری خرگوش تکامل پیدا کند و بعد از یک دوره ده ساله دوباره سرکلهش پیدا شود و با هر پاد سازگاری که خرگوش ها با آن رسیدهاند مقابله کند. همیلتون چرخی بیپایانی از پاد سازگاری و پاد، هاض سازگاری ترسیم می کند که در طول زمان در چرخه و همواره تعریف بهترین خرگوش را به می می‌کنند حاصل این که از قرار معلوم سازگاری برای مقاومت در مقابل بیماری با سازگاری با محیط واقعی بیرون تفاوتی عمده دارد در حالی که ممکن است بهترین طول پا برای خرگوش یک چیز معین و ثابت باشد از نظر مقاومت در برابر بیماری، یک بهترین خرگوش که چیز ثابتی باشد وجود ندارد. از آنجا که خطرناکترین بیماری های امروز چیز ثابتی نیست، بنابراین بهترین خرگوش امروز هم چیز ثابتی نیست. آیا انگل تنها نیروی انتخابند که به این صورت عمل می کنند؟ مثلا شکارگرها و تعمه ها همیلتون آنها را اساساً مانند انگل ها اما سرعت تکاملشان مانند سرعت بسیاری از انگلها نیست. احتمال که انگلها تکامل پادسازگار ژن به ژن داشته باشند بیشتر از شکارگرها یا تعمه هاست. همیلتون چالش های چرخی انگل را در نظر گرفته و را مبنای این نظریه کلی تر می کند که اصلا چرا جنس وجود دارند. در اینجا ما با استفاده او از انگل برای حل تناقض محو تنوع در انتخاب جنسی سر و کار داریم. به باور او مقاومت ذاتی نرها در برابر بیماری مهمترین معیاری است که ماده ها برای انتخاب نرها به کار میبرند بیماری چنان مصیبت فاجعه آمیزیست است که ماده از هر توانایی ممکن کمک می گیرد تا وجود بالقوه بیماری را در نر شناسایی کند. ماده ای که مثل یک پزشک با تشخیص درست عمل کند و فقط سالمترین نرها را برای جفتگیری انتخاب کند به ژن سالم در بچه هایش دست یافته است. ولی چون مدام تعریف بهترین خرگوش عوض می شود همیشه یک چیز با اهمیت برای ماده ها در کار انتخابشان وجود خواهد داشت وقتی نرها را برانداز می کنند همیشه بعضی نرها خوب و بعضی بد هستند بعد از نسل ها انتخاب همه خوب نخواهند شد زیرا تا آن وقت انگلها هم تغییر کردند و به این ترتیب تعریف خرگوش خوب عوض شده است جنی که مقاومت خوبی در مقابل یک ویروس خرگوشی دارد در مقابل نوع دیگری از آن ویروس که جهش یافته و وارد صحنه شده از چندان مقاومتی ندارد و به این صورت چرخهای نامشخص از تکامل بیماریها در گردش است. ها هرگز کوتاه نمیآیند و بنابراین ماده ها هرگز از جستجوی مدام خود برای یافتن نرهای سالم دست بر نمیدارند. نرها به این سختگیری ماده ها که مثل رفتار دکترهاست چگونه واکنش نشان میدهند. آیا آن ژنها که ظاهر را سالم نشان میدهند برگزیره می, دهند می شود؟ شاید در ابتدای کار چنین باشد اما بعد از آن انتخاب دقت تشخیص مادهها را بیشتر می کند و آنها نرهای واقعا سالم را از نرهای به سالم تشخیص می دهند. همیلتون در نهایت بر این باور است که ماده ها چنان طبیبان حاضقی خواهند شد که اگر نرها خودی نشان بدهند آن خودنمایی بر اساس صداقت و درستی است. اگر هر آرایه مردانهی چشمگیر و اغراق شده باشد یقینا نشانی از تندرستی است. نرها به شکلی تکامل یافتند که ماده ها براحتی شاخصهای سلامت آنها را اگر سالم باشند ببینند. نرهای واقعا سالم از اینکه چنین نشانه را رو به نمایش بگذارن لذت میبرن. آنها که سالم نیستن، معلوم است که طور دیگریان، ولی چه میتوان کرد؟ اگر حتی تلاشی هم برای ارائه گواهی سلامت نکنند، آن وقت دربارهشان بد جوری قضاوت میکنند به هر حال، اگر برداشت ما این باشد که مادهها قصد درمان کردن نرها را دارند، همه این بحث ها بیهوده است. علاقه مادهها تنها به تشخیص است. و این علاقه از روی لطف نیست من حالا فکر میکنم دیگر لزومی ندارد در مورد استفاده از استعاره مانند صداقت و نتیجه گیری حوض خواهی کنم